میفرماید که دل رستم از غم پرندیشه شد جهان پیش او چون یکی بیشه شد که گر من دهم دست بند ورا وگر سر فرازم گزند ورا دو کار است هر دو به نفرین و بد گزایند رسمی نواوین و بد میگه من اگر دست به بند او بدم بده؟ اگر با او هم جنگ بکنم بازم بده یعنی هر تو طرف من در بد گرفتار شدم یکیش اینه که بند بشه که بند بشه که دیگه من دیگه رستمی در بین نیست تمام شده رفته اگر جنگ باشه بعد اونم رستم بیان میکنه که یا من پیروز میشم یا اون پیروز میشه بذاریم اینو از زبان خود حکیم بشنویم دو کار از هر دو به نفرین و بد گذایند رسمی نواین و بد هم از بند او بد شود نام من بد آید ز گشتاس انجام من به گرد جهان هر که راند سخن نکوهیدن من نگردد که که رستم ز دست جوانی بخست به زابول شد و دست او را ببست همان نام من باز گردد به ننگ نماند ز من در جهان بوی و رنگ وگر کشته آید به دشت نبرد حالا جنگ کنیم و اسفندیار کشته بشه و اگر کشته آید به دشت نبر شود نزد شاهان مرا روی زرد که او شهریاری جوان را بکشت به دانکو سخن گفت با او درشت بر این بر پس از مرگ نفرین بود همان نام من نیز بی دین بود این مال وقتی که اگر او به دست من کشته بشه و اگر من شوم کشته بر دست اوی نماند به زاولستان رنگ و بوی شکسته شود نام دستان سام زابول نگیرد کسی نیز نام ولیکن ایکن همی خوب گفتار من از این پس بگویند بر انجومن بعد از اینکه که همین حرفاری میزنه چنین گفت پس با سرف مرد که اندیشه روی مرا زرد کرد که چندین بگویی تو از کار بند مرا بند و راوی تو آید گزند. مگر کاسمانی سخن دیگر است که چرخ روان از گمان برتر است، میگه تو همش از بند حرف میزنی، مثل اینکه سرنوشت جور دیگه ای میخواد بگرده و سخن آسمانی مثل اینکه چیز دیگره و بعد اینجا به استراحت میگه که دیف در بین شما راه جسته، کار گشتاس و هم کار اهریمنی است که کرده دیگه هرچه داره میگه مگر کاسمانی سخن دیگر است که چرخ روان از گوان برتر است همه پند دیوان پذیری همی ز دانش سخن بر نگیری همی تو را سال بر نامد از روزگار ندانی فری به بد شهریار میگه پدرت داره گولت میزنه تو جوونی فری به بد او رو نمیفهمی تو یک تا یا یو... یعنی ساده دل در حقیقت تو یک تا دلی یا ندیده جهان جهانبان به مرگ تو کوشت نهان میگه پادشاه دنبال مرگ توست گریدون که گشت از روی بخت نیابت همی سیری از تاج و تخت به گرد جهان بردواند تو را به هر سختی پروراند تو را میگه حالا تو رو اینجا قصدش گشتن توست ولی اگه این کارم تمام بشه بره و گشتاس و از تاج و تخت سیر نشد دوباره تو رو دور جهان میدوانه به گرد جهان بردواند تو را به هر سختی پروراند تو را به روی زمین یک سر اندیشه کرد خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد کتابیست اندر جهان نامدار کجا سر نپیچاند از کارزار کزان نامور بر, بر تو آید گزند بماند به دو تاج و تخت بلند که شاید که بر تاج نفرین کنیم و از این داستان خاک بالین کنیم همی جان من در نکوهش کنی چرا دل نند در پجوهش کنی بهتن رنج کاری تو بر دست خیش جز از بدگمانی نیاید پیش مکن شهرییا را جوانی مکن چنین بر بلا کامرانی مکن دل ما مکن شهریارا ها را نجند میاور به جان خود و من گزند یزدان و از روی من شرم دار مخور بر تنخیشتن زینهار زینهار به معنی امان و امان دادنه و زینهار خوردن به معنی تأمین کسی رو شکستنه میگه تأمین جان خودتو مشکن برای اینکه اگه در جنگ با من رو بری ممکن ممکنه تو از دست بدی. ز یزدان از روی من شرم دار مخور بر تن خیش زینهار تو را است از جنگ من و زین کوشش و کردن آهنگ من زمانه همی تاختت با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه بماند به گیتیز من نام بعد به گشتاس بادا سرانجام باد آخرش میگه امیدوارم که سرانجام باد به او برسه اسفندیار بازم گوشش بده کار این حرفا نیست. در باطن دلش خواستار تاج و تخته در ظاهر میگه من سر از امر شاه نمیتونم به پیچم بران که گنهکار میشم چو گردن گردنکش اسفندیار به دو گفت که ای رستم نامدار به دانای پیشی نگر تا چه گفت به گه که جان باخرت کرد جفت که پیر فریبنده کانا بود وگر چند پیروز و دانا بود مثالی میزنه گویا ضرب المثل بوده در اون روز باز برستم بد میگه میگه دانای قدیم گفته است که پیر فریبنده کاناست کانا یعنی جاهل و نادان میگه هر چقدر پیروز و دانا باشه ولی پیرمرد فریبنده نادانه که پیر فریبنده کانا بود و اگر چند پیروز و دانا بود تو چندین همی بر من افسون کنی که تا چنبر از یال بیرون کنی تو خواهی که هر کس که این بشنود بدین خوب گفتار تو بگرود، مرا پاک خانه ناپاک رای، تو را مرد هشیار نیکی فزای بگویند کو با خورام و نوید بیامد ورا کرد چندی امید، سپه گفتار او سر بتافت، از آن پس که جز جنگ کاری نیافت. همی خواهش او همه خار داشت، زبانی پر از تلخ گفتار داشت. بدانی که من سرز فرمان شاه نه نز بهر تخت و به بدو یاوَم من در جهان خوب و زشت بدو است دوزخ بدو هم بهشت میگه من اگر سرز فرمان شاه نمیتابم برای تخت و تاج نیست و حال اینکه هست اسفندیار داره خودشو گول میزنه واقعا برای این هست میگه نه این برای این است که امر شاه درش هم دوزخ هست هم بهشت یعنی اگر اطاعت کنم بهشته اگر اطاعت نکنم دوزخه تو اکنون به خوبی به ایوان بپوی سخن هرچه دیدی به دستان بگوی سلیحت همه جنگ را ساز کن از این پس ما پیمای با من سخن. پگاه های در جنگ من چار ساز مکنزین سپس کار بر خود دراز تو فردا ببینی به آوردگاه که گیتی شود پیش چشمت سیاه بدانی که پیکار مردان مرد چگونه باید روزت منگونه نبرد. بدو گفت رستم که ای شیر خوی تو را اگر چنین آمد از تو را بر تک رخش مهمان کنم سرت را به گوپال درمان کنم تو در پهلو پهلو ونی شهره تو در پهلو از خیش بشنیده ای به گفتار ایشان بگربیده ای میگه تو در شهر خودت چنیدی که از تو حرف میزنن خیلی حرفای اونا رو باور کردی پهلوان درست ندیدی تو در پهلو از خیش بشنیده ای به گفتار ایشان ای که تیغ دلیران بر اسفندیار به آوردگه بر نیاید به کار ملاحظه که اینجا باز قصه روینتنیه میگه از مردم چنیدی که میگن که تیغ دلیران در میدون جنگ به اسفندیار کار ولی فردوسی طوری میگه که یعنی مقصودش اینه که رستم اولا اینو قبول نداره دوم اینکه میگه تیغ کار نمیکنه مقصود این نیستش که تنه او رو این تنه فرار میکنه فردوسی همیشه از اینکه صریحا بگه اسفندیار رو این تنه ببینی تو فردا سنان مرا همان گرد کرده انان مرا که تا نیز با نامداران مرد نجویی به آوردگه بر نبرد لبه مرد برنا پار از خنده شد همین گوهران خنده را بنده شد به رستم چنین گفت که نام چرا تیز گشتی بدین گفت چ چو فردا بیایی به دشت نبرد ببینی تو آورد مردان مرد نه من کوهم و زیرم اسبی چو کوه یگانه که مردم چون گروه گر از گرز من باد یا بد سرد بگرید به درد جگر مادرت وگر کشته آیی به آوردگاه ببندم تو برزین برم نزد شاه بدان تا دگربنده با شهریار نجوید به آوردگاه کارزار مرازه فرمودید این دو پهلوان نتیجه گفتگوشون این بود که از هم با رنجش و دلتنگی جدا شده رستم که همچنان تنگدل بود و تند خوب بود وقتی به در سراپرده میرسه کتاب میکنه به آستانه در. سراپرده ای که شاهان گذاشته هم او به سر برده بودن و مطالبی میگه که برای اسفندیار برخورنده است و یه مرداری باز موجب ناراحتی بیشتر میشه بنده اینا رو از رو شاهنامه ورزتون میرسونم سرستم به در شد ز پرده سرای زمانی همی بود بردر به پای به کریاس کریاس آستانه داره به کریاس گفته سرای امید خونک روز کندر تو بود جمع شید همایون بودی گاه کابوس کی همان روز کی خسرو نیک پی در فرحی بر تو اکنون ببست که بر تخت تو ناسزایی نشست مراد گوشتاسبه شنید این سخنهای اسفندیار پیاده بیامد بر نامدار به رستم چنین گفت که ای سر گرای چرا تیز گشتی به پرده سرای سزد گر بر این بوم زابلستان نهت دانشی نام قلقلستان نمهمان چو سیرایت از میزبان بزشتی برد نام پالیزبان سراپرده را گفت بود روزگار که جمشید را داشتی بر کنار همون روز که از بحر کابوس جا بودی پرده و سایه بارگاه کجا راه یزدان همی باز جست همی خواستی اختران را درست زمین سو سراسر پراشوب بود پر از خنجر و غارت و چوب بود کنون مایدار تو گشتاست پست به بی پیش ویندر چو جاماست پس، نشسته به یک دست او زردهشت که با زند و است یعنی زند و اوستا، آمده است از بهشت به دیگر پشوتن گو نیکمرد چشیده گیتی بسی گرم و سرد به پیشندر اون فر که از اون شاد شد گردش روزگار دل نیکمردان به دو زنده شد بعد از بیم شمشیر او بنده شد بیامد به در پهلوان سوار پسندر همی دیدش اسفندیار اسفندیار باز این که گفت نه این سراپرده الان وضعش بهتره که گشت هاست و زرتشت هست و پشوتن است و اسفندیار است و ممرکت آرام است و الان وضعش بهتر از دوران کاووسه پهلوان رفت وقتی که پهلوان از سراپرده دور میشه اسفندیار با همه این ناراحتی ها و با همه این تلخویی ها نمیتوانه از تحسین رستم خودداری بکنه چند جا اتفاق میفته که رستم وقتی میره از پشت سر اسفندیار او رو تحسین میکنه یکی همینجاست چوب برگشت از او یعنی اسفندیار از سمت رستم و از نگاه رستم برگشت چون برگشت از او با پشوتن بگفت که مردی و گردی نشاید نهفت، ندیدم به دینگونه اسب و سوار، ندانم که چون خیزد از کارزار. یکی جندفیل است بر کوه گنگ اگر با سلیه اندراغت به جنگ، اگر با سلیه نبردی بود، همانا که آیین مردی بود، به بالا همی بگذرت فر و به که فردا ببیند نشیب. چو فردا بیاید به آوردگاه، کنم روز روشن بر سیاه. میگه که این پهلوانی که به این چیزی هست اینا می ترسم که فردا من اگه در جنگ با او بشم روز روشن را بر او سیاه کنم، باز برای بار دیگر با اینکه اسفندیار میدونه که پشوتن برادرش مرد خیراتمنده و در خیراتمندی از همه بالاتر اصلا به دعای زردشت این خرد آسمانی داره، تا حالا هرچه پشوتن گفته خلاف رأیش کرده ولی با این حال پشوتن از نصیحت فروگذار نمیکنه و باز به برادرش اندرز میده پشوتن به دو گفت بشنو سخون همی گویمت ای برادر مکن تو را گویم و بیش گویم همی که از راستی دل نشویم همی می آزار کس را که آزاد مرد سر اندر نیارد به آزار و درد به خصب امشب و بامداد پگاه برو تا به عیبان او بی سپاه به ایوان او روز فرخ کنیم سخن هرچه گویند پاسخ کنیم همه کار نیکوست زود در جهان میان کهان و میان میان همین سر نپیچد زه فرمان تو دلش راست بینم به پیمان تو تو با او چگویی به کین و به خشم از دلت کین و از خشم چشم راست ولی اسفندیار گوشش بدهکار این حرفها نیست باز حتی به برادر خردمندش جواب سروالا میده یکی پاسخ آوردش اسفندیار که بر گوشه گلستان رست خار میگه این خار گوشه گلستان در امده. چنین گفت که از مردم پاکدین همانا نزیبد که گوید چنین گریدون که دستور ایران تویی دل و گوش و چشم دل ایران تویی همی خوب داری چنین راه را خرد را و آزردن شاه را همه رنج و تیمار ما باد گشت همان دین زردشت بیداد گشت که گوید که هر کوز فرمان شاه به به دوزخ و جایگاه مرا چند گویی گنهکار شو ز گفتار گشتاس بیزار شو تو گویی و من خود چنین چی کنم که از رای و فرمان او پی کنم گریدون که ترسی همی از تنم من امروز ترس تو را بشکنم کسی بی زمانه بگیتی نمارد. زمانه اینجن عجل. کسی بی زمانه بگیتی نمرد. نماردان که نام بزرگی ببرد. دو فردا ببینی که بر دشت جنگ چه کار آورم پیش جنگی پلنگ. باز برادر اندرز رو از او دریق نمیکنه. پشوتن به دو گفت که این نام دار چنین چند گویی تو از کارزار. که تا تو رسیدی به تیر و کمان نبود بر تو ابلیس را این گمان به دل دیو را راه دادی کنون همی نشنوی پند این رهنمون دلت خیره بینم همی پرستیز کنون هرچه گفتم همه ریز ریز چگونه کنم ترس را از دلم به دینسان کزندیشه ها بگسلم دو جنگی دو شیر و دو مرد دلیر چه دانم که پشت که آید به زیر ورا نامور هیچ پاسخ نداد نمیتونست از تصمیم خودش سرف کنه راستم میگفت ورا درشتی ورا نامور هیچ پاسخ نداد دلش گشت پر درد و سر پر زباد این وضع استندیار پس از رفتن رستم با برادرش در دستگاه خودش اما رستم هم برمیگرده به ایمان خودش اونام یه چنین وضعی داشتن محیط بسیار مسموم ناراحتی اتفاق افتاده و فردوسی حالا میره به سراغ رستم که برگشته به ایمان خودش. چون رستن بیامد به ایوان خیش نگه کرد چندی به دیوان خیش زواره بیامد به نزدیک اوی ورا دید پژمرده و زرد به دو گفت یعنی رستن به برادرش زواره گفت به دو گفت رو تیغ هندی بیار یکی جوشن و مغفری نامدار منده قبل از اینکه دنباله ای مطلب را کنه کنم باید عرض بکنم که مدتی است یعنی از وقتی که دستگاه گوش تاسمیونه هست رستم گوشه است و وارد کارزار اینا نشده مدت‌های مدیدی که سلاح و اینا رو ترک گفته جنگی نبوده کاری نبوده در سیستان نشسته بوده بنابراین مدتها مدت‌ها بوده که با اسلحه و با زره پوشیدن و نیزه به کار بردن اینا دیگه بیگانه شده بوده کنار گذاشته بوده اینا رو این است که حالا با نگرانی به برادرش میگه برو سلاح من بیار که باز دوباره ما به اینا احتیاج پیدا کردیم بدو گفت رو تیغ هندی بیار یکی جوشن و مغفری نامدار کمان آرو برگستوان آرو ببر ببر مراد ببر بیانه که نوعی خفتان بوده رستم زیر زرهش میپوشیده گویا از پوست سگ آبی این رو میساختن کمان آر و برگستوان آر و ببر کمند و گرز گران آر و گبر گبرم یعنی کلا خود زواره بفرمود تا هرچه گفت بیاورد گنجور او از نهفت چورستم سلیح نبردش بدید سرفشاند و باد از جگر برکشید چنین گفت که جوشن کارزار، براسودی از جنگ یک روزگار کنون کار پیش آمدد سخت باش به هر جای پیراهن بخت باش چنین رزمگاهی که قران دو شیر به جنگ اندر آیند هر دو دلیر کنون تا چه پیش آورد چه بازی کند در دم کارزار رستم این حرفا رو میزنه زال متوجه حرفای رستم میشه چون نگفته بوده که اونجا با اسفندیار در گفتگوی بین خودشون چه گذشته که وقتی میاد با سلاح خودش خطاب میکنه که سخت باش آماده باش زال که او هم معروف به خردمندی بوده بسیار نگران میشه بشنید دستان ز رستم سخن پرندیشه شد جان مرد کهن بدو گفت که این نام بر پهلوان چه گفتی که از آن تیره گشتم روان تو تا برنشستی به زینه نبرد نبودی مگر نیک دل را مرد همیشه دل از رنج پرداخته به فرمان شاهان سرافراخته بترسم که روزت سرایت همی گرختر بخاوند رایت همی همی تخم دستان زبون برکنند زن و کودکان را به خاک افکنند به دست جوانی چو اسفندیار اگر تو شوی کشته در کارزار نماند به زابلستان آب و خاک به تندی برا گردد مقاک ورید اون که او را رسد گزند اگه او در جنگ مغلوب بشه و کشته بشه وریدون که او را رسد گزند نباشد تو را نیز نام بلند همین هرکسی کسی داستان زنند براورد نام را بشکنند که او شهری ها ایران بکشت بدان کو سخن گفت باوه‌ی درشت همی باش در پیش او بر به پای وگر نه همکنون به پرداز جای به بیغوله‌یش و فرود از مهان که کس نشنود نامتن در جهان که از این تو را تیره گردد روان به از این شهریار جوان به گنج و به رنج این روان بازخر خر بر پیش دیوای چینی تبر میگه این دو حال بیشتر نادر. اگر تو کشته بشی که اسفندیار گرد از خاندان ما برمیاره و زابلستانو رو سر و اگر تو او رو بکشی میگن بله شاهزاده جوانی رو فقط به این دلیل که با او درشت حرفزد کشت و بنابراین نام تو بده برو پیشش به پای بایست و سعی کن که خودت رو با گنج و با خواسته بخری، به خلعت بدی، سعی کنی دلشو رو به دست بیاری و اگر نمیشه برو یه جایی که تو رو نبینن کسی دسترس به نداشته باشی برای این کاری که من میبینم هر دو سرش بد تو برگردد او از لبه هیرمند، تو پای اندر آور به رخش بلند چو ایمن شدی، بندگی کن به راه، بدان تا ببینی یکی روی شاه چو بیند تو را کی کند شاه؟ بد خود از شاه کردار بعد کیسه زد رستم که همه این حرفا رو زده و زال خبر نداره همه اینا رو گفته که گنج میدم هرچی میخوای میدم تاج خودم به سرت میذارم همه این کار رو گفته خندش میره از حرف پدرش که حالا فکر میکنه که حلی داره پیشنهاد میکنه که رستم به نظرش نریست